الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين و وصحبه أجمعين اما بعد ما ده درس گذشته دو تا خیلی مهم رو بحث اهل بیت چیزی و وجود چیزی که انسان میتونه با ایمان خودش انسان تقویت بکنه میتونه به انسان با انسان میتونه با اون به خدا نزدیک بشه هیچ چیزی بالاتر از علم نیست علمی که خدا من کرده به برانش علمی که با اون خداوند خواسته امت ها نجات بده علم شرفش بالاست یکی از بزرگترین چیزهایی که انسان میتونه به خدا برسه همین علم علم به کتاب و سنت علم به قرآن خداوند فهم تدبر قرآن بعد از اون بحث تفکر در مخلوقات خداوند بود نه تفنه تفکر تفکر اشعره شک در خداوند و رسیدن به خداوند با شک نه اون شک ما تزله و اشعره بعد از اون از جمله مسائلی که هست انسان میتونه به اون به خدا نزدیک بشه علمشو قوی بکنه و ایمانشو قوی بکنه علم عمله عمل به اون علم وقت آن چیزی که در شرق آمده طبق آن چیزی که در سنت مصطفی و در قرآن کریم اومده عمل سبب میشه که انسان به خدا نزدیکتر بشه عمل سبب میشه که انسان حسناتی کسب بکنه سبب میشه که آتش جهنم را بر خودش ترف بکنه و خداوند چیزی غیر از عمل از انسان تصنفت و ما امروا الا ليعبد الله مخلصین له الدين حنفا شيء غیر از عبادت غیر از عمل به علم از مناصبه و ما امروا الا ليعبدوا عبادت بکنن پرستش هم یک عمله وفق چی مخلصین له الدين اخلاص شرط اول شرط دوم له الدين متابعت و درج باشه اگر متابعت نباشه قابل قبوله ایمان رو زیاد میکنه نه انسان از خدا دور میکنه متابعت نباشه عمل قابل قبول نیست شرط در صحت عمل چیده اول شخص واس مؤمن باشه به خدا بپذیره چون اگر مؤمن نباشه حوالمند رو عملش قابل قبول نیست شرط دوم اخلاص باشه برای خدا نباشه خدا من قبول نخواهد کرد ریا باشه قبول نمیکنه خداوند شرط سومش متابعت باشه طبق وحی باشه اون چیزی که خدا من نلش راضیه حالا میاد در شرط عبادت بعد از بعد از توحید که در شرط عبادت شروط عبادت تعریف عبادت مهم اینه که این بدونه عبادت چه که خدا دوست داره ماستر میتر بدونیم که این فلان عبادت خدا دوست داره غیر ممکنه باوی چیزی که خدا دوست داره ایمانمون زیاد بشه با زنا و با فدان و با یا با اختراع بعضی از عبادات ایمانمون زیاد بشه چون نمیدونیم خدا یا دوست داره نه پس با آن چیزی که خدا آن رو دوست داره میتونیم ایمانمون رو تقویت بکنیم قل ان کنتم تحبون الله فتبعوني يحبكم الله ويرضاكم ذنوبكم قرآن اگر محبت خدا من رو دارید کار بکنید از من تبعیت بکنید یعنی از رسول خدا تبعیت بکنید بگوی محمد اگر اگر خود من را دوست دارید و محبتش دارید از من تبعیت بکنید پیروی بکنید اون چیزی که من انجام میدم انجام بدید ما کما رایتونه و صلی کنو انی مناسککم بیان میکنن نماز بخونید اونچنان که من نماز بکنم مناسک را از من بگیرید لخط کان لكم في رسول الله اسوه حسنه البینتیس برای اینکه پیشوا بشه الگو بشه, البو بشه. خب اگر الگو شد عمل کردی باعث کرده که الله صلی الله علیه و عمل کردن چی میشه؟ یهحبب الله محبت خدا بر این چی؟ خب اگر خدا ما رو دوست داشته باشه چی میشه؟ ما با خدا نزدیکتر شدیم نشدیم تا میشه انسان به خدا نزدیکتر بشه یهحبب الله و خیلی کم دنیا کم خدا من پس سبب میشه که انسان منزلتی در از خدا بالا تر بشه منزلتی در بیش بالا تر بشه عذابش کمتر بشه حسنات هم بکنه. چون رسول الله گلوشه پس خیلی چیزها میشه انسان با عمل کسب کرد با عمل میشه انسان با قیام وله و, و تسجود با خوندن نماز شب با سنت راتبه از کار بعد از نماز انسان میتونه با خدا نزدیک بشه ما نگاه بکنیم دراره برای خودمون کسی که نماز قیام میکنه و کسی که نمیخونه چقدر فرق دارند با هم خدامند در سوره زمر چنین میگه اما هو قانتون انا الليل و وقائما يحذر الاخر و رحمه ربه قل هل يستبه الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أمن أم هو قانط آناء الليل من إن كسي كدر شغنغاه ميشن ميسر نماذ ساجدا وقائما درس جود ميكونه و ميسته نماذ استاده نماذ ميخونه و مثل كسي كه علم نداره وإنشن انكاري أنجام نميده مثل هم لسان. و اون کسی میتونه درد بکنه که صاحب بسیرت باشه صاحب درک باشه خداشو شناخته باشه خودشو شناخته باشه و نیازشو نسبت به خدا درد, درد کرده باشه پس عمل به اون علم سومین چیزی است که انسان را میتونه به خدا من نزید از اون چیزهایی که انسان یعنی ایمان انسان را زیاد میکنه محافظت بر خود ایمانه محافظت بر ایمان موامی تنمید در دو چیز خلاصش را ساشو در قرآن چنین بیگه وَجَعَلْنَ منهم اَئِمَّةً يهدون بأمرنا لما صبروا وَكَانُوا بآيَاتنا يُقِنُمْ وَجَعَلْنَ منهم اَئِمَّةً يهدون بأمرنا لما صبروا وَكَانُوا بآيَاتنا يُقِنُمْ امام من اقیم نخمی کنا از شیخش ابن که بیگه کچی تا این آیه به صبر تنان دست و یقین تنان الیمامه تفکید صبر و یقین دو وسیله مهمی هست که دارای بود با داشته باشه تا به چی برسه امامت امامت در دنیا و آخرت در آخرت نجات پیدا بکنه ابراهیم علیه السلام با طولگو مون باشه ابراهیم چطور الگو شد چطور امام شد چطور به در امامت با به درجه نبوت و به این شرف و به این منکانه رسید با همین صبرش با همین یقینی که داشت نسبت به خداوند حالا در بحث توحید خواهد موسى ابراهیم چه ویژگی‌هایی داشتن ثروتش در که ما میتونیم وجه استفاده بکنیم لیکن حالا این. این چیزی که مد نظر من هست در این آیه که باید محافظت داشته باشیم چیزی که باید یک مؤمن حقیقی طالب علم صلاح چه طالب علم باشه چه غیر باید داشته باشه تا ایمانش قوی باشه قوی باقی بیمونه تقوییر بشه. ما دو چیزی که ازش می نالیم نالشمون از دو چیزه دردمون در دو چیزه یک شهوت دو شبه شک و شبه بچی؟ شهوت شهوت را میشه با چی باید دفع کنیم با چی, چی, چی میشه دفعش کرد؟ با علم؟ خیر با علم ترمانه میشه با صبر، با حبس نفس. شیطان با این دو چیز مبارزه میکنه با شهبت و شوکه با سبت و جعل من من هم امتن یهدون با امرنا لما صبر اول سبت طالب این باد خودشو سبت خودشو حبس بکنه سبت اینه حبس نفس حبس نفس از انجام دادن محارن سرومات حبس نفس روی طعات خداوند حبس نفس از نارضایتی در قبول قضا و قدر خداوند حبس خود بکنی خود در مقابل در مقابل شهبات نب. با شیطانت باید مبارده بکنی، باید خودتو حفظ بکنی، روی طاعت خودتو نگه بداری، از کسی نترسی، اون کسی که باید من ندرده، باید. اول و آخر خداوند. اما شبهه دردش و علاجش علم. باید علمیاتو اونو خنصا بکنه، باید خود ما رو به خدا نرسی بکنه، خاطر همین دیگه. و منو منهم مثل از دوونه بعمله علم ماصبر و وكو بهيات نه یونزن این سفا که داشتن یخید یخید قبل از علم واقعو قبل که سب داشته باشن علمم هم داشتن یقی هم پس علم صبر دو وسیله اصلی برای نجات برای محافظت بر ایمانه برای تحخویات ایمان اگر میخواید طالب علم حقیقی باشی اگر می واقعا نجات پیدا بکنیم اگر میخوای واقعا ایمان از قبی باقی مونه باید این دو چیز داشته باشید. معاهدت بر علم قرآن تلاوت قرآن و تدبر در قرآن و حضور در کلاس ها وشنیدن کلاس های علماء. یا علماء اگر نیمن حتی ها مذاکره علم یک وسیله برای تقویت ایمانه یادتون نره اون حدیثی که دلها را به تودا در میاره دلها رو میشکنه وقتی که رسول الله به صحابه گفتن که فرمودن که شخص میاد یعنی بالحسنات که مثل جبل اتحامه مثل کوه تخامه کوه بزرگ بیضا انقیه، خب حسنات خیلی بزرگ میاد لیکن هبا ان منظورات پوچه اون اعمالش شخص صالحیه اعمال خیلی صالحیه انجام داده حسنات زیادی داره مثل کوه تخامه وصاف پاک برای خدا بوده پاک بروی سلمت رسول الله هم بوده. لیکن پوچه. چرا صحابه این, این علامت سوال جلویشون میاد. چرا اینها این چنین عقوبتی خدا خودم نصیبشون کرده. چرا سرزنشون کرده و چنین عقوبتی برایشون گذاشته که این عملشون قبول نشد. اولائی که اذا خلو بمحارم الله انتهکوها خرمات خدا را میش... میشکستند. او که ما قالت صلی الله علیه وقت زیر پا میگو داشتند. ما خودمون در نظر بگیریم. در خرمت سرمون. علانیتمون در نظر بگیریم. چقدر ما واقعا از حرام دور بودیم. از غیبت نمیمه دروغ نمیدونم. فکرت ما میگونام. چقدر ما واقعا پرهیز داشتیم. حسن ها داشته باشیم. روزه بگیریم. نماز بخونیم. بیکن خودمون نباشید مواظب گناهانمون مراقبت نداشته باشیم از خدا دور باشیم خیلی مهمه مغرور نباشیم به خودمون به, به نمازمون مغرور نباشیم بدونیم که خودی یمجه به خدا کافی نیست محاسبه کنیم تک به تک اعمالمون فرد به فرد اعمالمون محاسبه کنیم شود پس باید ایمانمون با این تذکرات با این مذاکره با این جلسات با تقویت بشه باید به حالون تعللش برگردونده بشه و یا بیشتر بشه خب از جمله مسائلی که در این مساله وارد میشه معاهدت بر تلاوت قرآن قرآنی که شفاست و ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمة للمؤمن رحمة رحمة خودش را نمیخواد چرا نمیشینی در مسجد یک ساعت دو ساعت قرآن بخونی بعد از زمین تازه کنی جزیره و جزیره کسی که قرآن نخونه بعدا کسی که قرآن نخونه هیچی نداره کسی که قرآن نخونه ایمانش واقعا دیگه شد به همسرین و باسرگیلا شده است امتحان می‌کنه اگر انسان روی قرآن ما حد دسترسی واسه قرآن نکنه غمش و همش، خوابش و بیداریش با قرآن نباشه این شخص واقعا اینو هستی بود داشت یک بار چاره اندیشه برای ایمانش باشه ایمونش از تفویت بکنه این قرآن اگر انسان از دست بده یه چیزی نداره ما چیزی که دلش رو خوش کاری می‌کنه می چیزی که به سکونت میده آرامش میده این قرآنه قرآنو نداشته باشیم واقعا وکل محرومی وکل غریب قرآن باید همیشه داشته باشیم، قرآن باید همیشه بخونید قرآنی که رحمت و این قرآنی که خداوند دربارش میگه در, در سوره اسراء و يزيد الظالمين الا خساره جزئی نشو نباشیم حجت علینا نباشه بر ما حجت نباشه روز قیامت بیاز قرآن گردن ما رو بگیره از جمله چیزهایی که باید ما روش داشته باشیم معاهده بر تفکر قرآن افلا یا تذبرون قرآن؟ آم آن قلوب اخفلها؟ افلا هیچ وقت وعده رجت داده باشه و شم و قندوشه می نویسیم. آیا خاصیم؟ آیا واقعا تعاوه داشتی بر تدبر قرآن فهم قرآن چقدر وقت می رو برای خدا داری؟ 1440 دیگر 1440 دقیقه در روز داری. چند دقیقه از این 1440 دقیقه 1400 دقیقه برای خدا بوده؟ 50 دقیقه؟ 100 دقیقه کمی؟ یک چهاردهم؟ یک دهم کمی؟ برای بعدش خدا بدید خدایی که ما را خلقت کرد برای خودش و ما خلق شدیم و انسان الا لیعبدون چه قد ما واقعا عبودیت داشتیم در سیرت مصطفی در محافل این تامل بکنیم چک بکنیم سیرت مصطفی صلی الله علیه و جهادش خوششش عبادتش یک وسیله یک از بزرگترین وسایل و وسائل برای حفظ ایمانه نگاه به سیرت سلب، سیرت علماء، علماء چطور بودن؟ اگر اون علماء را در نظر بگیریم، اون اوصافی که داشتن دیگه امروز فکر نکنیم که اون عالمی که واقعا عالم بودن الان داشته باشیم راست رسول الله صلی و علماء زمانی میاد که علماء کم بیشن و میفرماین اِنَّ اللَّهَ لَا يَتَجْعُوهُ هَذَا الْعِلْمُ انْتَجَعَ اِنَّمَا يَتَجْعُوهُ بِقَضُ الْع حتى إذا لم يفعل من اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا أضلوا فلي علمه هم شخص دولان نمي كونه بل كبه قبض علماء علماء هم دان ديك جهال بيان جهال مدان فتوى مدانو بره خدس الحكم مدان غمراه مي كننو خدس نم غمراهن إن مشكلة كما دارش واقع حسين غمراهي عدم علم جهل فس این وسایل تقویتی ایمان، وسایل زیاد کردن ایمان. خب میمونه چه وسایلی هستن، وسیله هایی هستن که ایمان رو ضعیف میکنن. گفتی چیزهایی که ایمان رو بالا میبرن. زدش، برزد اونها چیزهایی هم هست که ایمان رو پست میکنه و ایمان رو پایین میاره. به پایین تین روزه ها و مراتبش میرسونه. چیه؟ جهد. اولین چیز جهد. بدترین مرض قد افلح من ذَكَّاهَ وَقَدْ من مَنْ دَخْتَاه فلاحا راستگاری برای اون کسی که تذکیه بکنه، تربیت بکنه نفس خودش بر ایمان معاهدت ایمان داشته باشه و کسی که اون ایمانش رو پنهان بکنه عمل نکنه به اون ایمانش دنبال علم نره، دنبال دین نره به پسرین جا و به خسارت رسیده و به بدترین زیان رسیده و خواب خوابه یعنی زیان کسی که با پنهان کردن حق و با پنهان کردن ایمانش با انجام داد با عدم انجام نیکی ها عمل نیک و انجام دادن گناه ها این شهر به این نتیجه و به این رصباهی برشنه خدا من در باره جهدین میگه قل اف غیر الله تأمرونی اعبدو ایوها الجاهلون ایوها الجاهلون مردم چی میخواد؟ غیر خداش میخواد؟ به درد چی میخواد؟ ما از خود دور بکنه گناهش میخواد؟ جیسان چی میخواد؟ ما از خود پس جهل اگر باشه شبه و شهوت بیاد علم نباشه, نباشه که بیاد خونساش بکنه جواب بده ما هم کتاخ بیام ما هم نگیم به مردم چی میشه؟ حق خدا را قل اغف غیر الله تعمرونی اعبدو اطاعت بکنم غیر از خدا از غیر از خدا برد بسرسم ایوها الجاهلون جهل بر این کسان کتاب بیاد جهل بر این کسان حق خدا رو به جا نیاره دومین چیز غفلته غفلت, غفلت. اعراض دادن تراموشی حالا هر کدوم به تک تاك تک تک میگم غفلت إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون كغفلات يك أذى صاريس كإنسان باع إيمانه شنقت مشه إن الذين لا يرجون لقاءنا كثاني كنبي خانهم رقاة نمرقاة ما در مرگ ما در گنستان، در دیکنی فکثارلو که ساختو میخوان مرد و به این دنیاشو راضی، راضی هستند به این پست و منصبی که دارن، مکانی که دارن، به این جایی که رفیقن راضی هست، به این خونه و به این کار و شغلشون راضی هست. و ما ها راحتن در اون کاری که هستن و الذين هم عن آیاتنا غافلون اونهایی که از آیات ما چی میخواد دیگه؟ خداوند میخواد بگه که اینها من من اونها رو دوست نداره. من نمیخوام که اونها برای دنیا باشن من میخوام برای من باشن زندگیشون و خوابیدنشون و بیدار شدنشون نماز خوندنشون روزه گرفتنشون همه برای من باشه نفس کشیدنش برای من باشه غافل نباشن از من دور نباشن چون من اونها رو خلقت کردم برای خودم و پیامبران هم برای خودم بهلا قد بعثنا في كل امه الرسوله ان اعبد الله واجتنبوا الطاغوت پیامبران برای چی فرستاده نقر استوسی غیر از غیر از ایمان تقویت بشه خیل. همه برای خود خدان بوده پس اگر این قدط اهم داشته باشه این ایمان این تویهه این حفت خدا چرا ما از خدا دور باشیم؟ چرا ما کمکاری می کنیمیم؟ چرا از حق خدا دفاع نکنیم؟ چرا نیم دعوت روسرت رو و پیان را احیا احاب بکنید مبارزه باشه مبارزه با بتت مبارزه با, با گناه چقدر ما مبارزه کردیم فقط خدان خدا گردن ما نه خواهد این شب که زننا این ه که دزدی میکنه، این ه که مجبور میکنه، این شب که فنا میکنه. گردن کی را خواهم گرفت؟ اول مان؟ اول تو کلبه عاصونی که وجید الی رو رو یاد گرفتن چرا اطلاح نکردی چرا مثل پیامبران پیشی ثبت نکردی چرا مثل پیامبران پیشینی که با میشار و بردن سرق سرشون گذاشتن و نصفشون کردن چرا مثل ما ثبت نکرد اصحاب چگونه ثبت کردن وقتی که مکی دعوتشون رو آغاز کردن چیکار کردن به رسول الله چیکونه مقابله کردن آیا آره زن سر ما چی میکنن مردم اینم این, این کرونا رو تن مادر رو بدن شکایت کردن و نمیدن به فلانجا و فلانجا هم رفتن آخربتا چی میشه اینم شهید شدیم در راه خدا رفتیم. ولی وارو سفیدی با رضایت خداوند با دعوت پیامبران از دنیا بریم. نه با روسوهی نه با روسیاهی اصحاب رسول الله میومدن با سنگ با سنگ سیاه وزیر آفتاب داغ میگذاشتن شو میدادن میودن در نکش شکایت که رسول الله ما شنجی ببینیم عذاب ببینید کی ت کنیم و ناراحت بیشن خشید چرا نمی میکن؟ این دعظت باید این چیدین چرا؟ ان راجل كان من من كان قبل کو یوته ون قال من ش منده؟ حون شبانه س از اشخاص پیشین اومط بشین میوردد به خاطر کهظیمرش برگرده برگرده میشار بر می رو میذاه فر سرش که بر بگرده. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ أَغَنَّتْكُمْ خُدَرُ قَاهِرِيمَ در وسط مردم بخنه بکنیم. بعد باید, باید در وسط مردم رو رو حل بکنیم. اما اگر خودم رو دور بگیریم کوتاه بیان کی میخوام درست بکنیم. کی میخوام وزیفه بیان برای روحی بکنه. کی میخواد از حق خداوند و بکنه. مردم خود گردن ما رو باحت گرفت. پس غافل نباید باشه جز غافلی نباید باشیم. چشبوشی بکنیم، بدون چشمانو ببندیم. خداوند توفیق به ما بده علم داشته باشیم، قرآن رو بخونیم که توابع تختیر باشه، آنها را برای خدمت بکنند، صحیح بخوریم و مسلم، و ابو داؤود و فلان برام باشه، و رأبیان صحیح و ضعیف مشخص بکنند، بد ما بیام، رهاشون بکنیم، بیاریم، بیهک روزی آلا بیاد که مردم بهش عمل بکنند نکنند. کی ما باید چشبوشی بکنیم. برای کی از این وعده نادر شده؟ کی بخواهد عمل بکنه؟ بس غفلت نباید باشه، اعراضم همچنین، پشتادنم همچنین، و من یعشو عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانن، فهو له قرآن ابرده. و من یعشو، کسی که دور باشه از ذکر من، یک لحظه طالب به از خدا دور شد، باور بکنید، حلقات ذکر نباشه، حلقات قرآن نباشه، همین مسجد نماز، باور بکنید، ما از اون شخص بچه رو خوارم میشه. چرا؟ چون ما خدا شناختیم و به خدا پ عاقبت چی میشه؟ عاقبت نسیانه که خداوند میگه در بحث فراموشی و فراموش کردن خدا والا تکونك الذين نسوا الله فانساهم انفسهم انفسه بل این نسیانه که مؤاخذه میشیم نه اون نسیانی که انسان دست خودش نیست یه چیزی ذاتن فراموش میکنه بنل لا این ان و واخطانا اون بل این نسیانی که سبب ما خودمونیم قرآن ما خودمون مراجعه نکنیم احادیث را ما خودمون نخونیم ما نکنیم تذکر ندیم این نسیانی که ما این فراموشی که ما خودمون گردن مراقبت گرفت پس غفلت و اعراض و پشت دادن نباید باشه نباید از ذکر خدا دور باشیم باور بکنیم یک لحظه دور بشیم یک ساعت و دو ساعت سه ساعت بشینیم توی لهو و لعب و زندگی و فلان خدا دور بشیم. پس ایمان باید ایمان باید تقویت بشه ایمان باید با دوری از این چیزها با دوری از غفلت خداوند عدم ذکر عدم تذکر بروز آخرت، عدم دعوت، عدم دعامت در پنداندزدن باید ایمان تقویت بشه چون با پنداند از زدن دعوت دادن علم عمل اینا هست که ایمان تقویت بشه بر دش، اون چیزها که بر ذاتش با حال بعد ایمان باعث تنبیری بر بخونسازش میکنه خب این خلاصه بحث چیزهایی که ایمان را تقویت میکنن میونه آخرین مسئله ای که امروز خواهیم داشت ایت مسئله خلافی هست. جوز آخری ما و هست که در مسئله ایمان بیان میشه. هرچند که این مسئله خاتمی ما و واحد ایمانمون نیست. مسئله استثناء در ایمان. ما و واحد دیگری هم هست. جنس عمل هم خواهدو بحث شرطیت بودن عمل شرط کمال رکن رکنیت رفن بحث اختلافی که در بحث تارت و سلات هست و بحث آلوانی این بحث باحت بحثی که دو سه ماهی که من روش دارم کار رو بخشی که نیاز به دقت داره که انسان کلام سلف را بفهمه کلام علمای متقدمین رو بفهمه نصوص سلف را بیاره جنس چیه؟ رغنیات چیه؟ نماس چیه؟ آیا واقعا انسان با عدم تکثیر تارک نماز کسی که رو ترک کرد با به کسره آیا واقعا مرجعی هست نیست آیا آلبانی مرجعی هست یا نیست آیا این تهمت درسته این مسائلی که ان الله ما میخوام بیانش بکنیم و اینجا توضیحش بدیم در خاتمه مبحث و ایمان مثالی استثناء در ایمان استثناء یعنی اینکه یک شخصی بگه من انشالله این سوال میشید شما مؤمنی؟ من انشالله مؤمنم. آیا این حرف ضرورتی یا نه؟ متکلمی از اشاعر و معتدله گفتن که واجبه باید بگی که من انشالله مؤمنم. چرا؟ چون اصلا خاطرمش نمیدونه از کجا منو که از ای با ایمان از دنیا بره انسان نمیدونه خاطرمش روی ای ایمان باشه یا نه چون من نمیدونم مؤمن از دنیا میرم یا کافر دیگم چی من انشالله مؤمنم به اعتبار عاقبتم به اعتبار عاقبتم پایان خاطره زندگی‌م میگم تجی چی انشالله من مؤمنم انسانی از با ایمان از دنیا میرم حالت دعا داره هم دعا و هم خبر ان که با ایمان از دنیا برم با یک امید و با یک تمام و یک وجه دیگرش واجبه در جایی که تذکیه نشه عدم تذکیه جایی که مثلا بطرف بگی شما مؤمنی دا اگر بگید من مؤمنم تنها تذکیه بشه خود سر اصل تعریف کردی و خداوند گفت ولاتوز که اون گفت که تذکیه نکنی پس اینجا باید بگیم چی؟ ان الله که من مؤمنم ان الله که من مؤمنم اینا نظر متکلمی اما از نظر مرجعه گفتن که استثناء در ایمان حرامه استثناء یعنی انشالله من مؤمنم یعنی شک کردم در ایمانم حالا مؤمنم حتی میانیستم استثناء یعنی شک استثناء یعنی که تو داری خود تعریف میکنی از خود تعریف میکنی من مؤمنه، مؤمنه، شر الله من مؤمنه، این مؤمنه حقیقی هست. بهینه الک کتاب کی درج ق hazards؟ یا شک ک درج ق گفتن حرامه. حالا چی دو ترفیت ترفیت بودیم. اینا میگن هر دوتا تلفیش نقضی. اینا میگن حرامه. اینا میگن حلاله. اهل سنت، اومدن حج و تورگرفت. گفتن به دو اعتبار موجبه. فبه به دو اعتبار عناشو ماناشو. ما در اقوال سلف اگه بررسی بگونیم اقوال صحابه و تابعی و همچین تابع تابعی که زیاد رواید شده الله من مؤمنم اگه خدا میخوام که من مؤمن باشم زیاده و با کراهت نگونستن چون هیچ کدومش رو شکل در ایمانشو نداشتن به دو اعتبار گفتن سلف واجبه به اعتبار یا بگیم جایزه و به دو اعتبار حرامه به چه اعتباراتی جایزه اگر به اعتبار خاتمه هست به اعتبار اینکه انسان مؤمن از دنیا میره شما با ایمان از دنیا خیره ان که من با ایمان از دنیا رفت این استثناء جایز میتونه انسان استثناء بکنه میتونم یقینا بگم از باب تمنی و ترجیح نه من حتما از با ایمان از دنیا رفت از خودم میخوام که منو با ایمان از دنیا ببره و یا از باب عدم تزکیه میخواد تزکیه نشه میخواد خود از خود خلی تو مومن حقیق لندی؟ انشاءالله که من مومن این اشکال نداره اشکال نداره نظر سرم عدم تزکیه و عدم شناخت عاقبت انسان و به دو اعتبار حرامه اگر قصد شک داشته باشه شک در تذکیق شک در ایمانش داشته باشه یا قصد تعریف از خود داشته باشه حرامه یه شخصی بخواهد خود تعریف تو مومن حقیه هستی؟ انشاءالله من من مومن حقیقی هستم یا مثلا به اعتبار یا به خاطر شک در ایمان تو مومنی؟ انشاءالله من مومنم بستگی به اون لحظه داره که خطاب بشه. سوال شد بستگی داره که چطور به این سآل پاسخ بدیم پس بدون اعتبار جایزه و بدون اعتبار جایز نیست این خلاصه بحث است در ایمان است در ایمانی که بحث بین تلاقی و خلف شده خب مباحثی هم هست که حالا اگر هست مشکلی هست بهش پاسخ دکتر گفتیم که جایز در دو حالت یکی اینکه بحث عدم شناخت عاقبت باشه انسان از عاقبتش ندونه کلا با ایمان از دنیا خواهد فحضرت اجازه که انسان بگه ان من و همچنین به خاطر اینکه تذیه نشه اما جایی که میره تذیه بشه حرامه است استثناء بشه دو جا هست که حرام است انسان استثناء بکنه دو جا هست که حرامه. یک جا شک در تصدیقش شک در ایمانش و جای دیگر به خاطر تذیه و به خاطر تعریف خودش در این دو حالت که دست نبو کنه و شخص بگه من انشالله مومنم خب بکنم این درست که اینجا کافی باشه تا مسائل خلافی دیگر هم باز بشه که مباحثی خیلی همونشنا نیست یک مباحثی هست که بعد میگردن به بحث به بغیر ما انزل الله که بعد میگردن به شرف که در نهایت نواقض ایمان و توحید را که میارند مثلا علمان میگن ایمان بحث توثل به غیر خدا و خیلی از مسائل میشه در, در, در نواقض ایمان که خود نواقض ایمان نواغذ هم هست لیکن یک مسئله خاصی هست وانه مسئله نماز و جنس عمل آیا یک شخصی که بگه من مومنم ولی نمیتونم عمل بکنم نمیخوام عمل بکنم آیا این شخص نماز روی خونده میشه؟ نمیشه؟ آیا این شخص مؤمن هست؟ نیست؟ چه حقیق داره در نظر ما؟ این مسئله هست که ما در جلتیز بعد مطلق فایین کرده انشاءالله و به اذنه و به عولی و به حولی و قوت تک سوال نره در زمینه که بحث شده سبحان کنال بحمده سبحانه کنال بحمده سبحانه کنال